شاعران قصه میگویند ان در صورت هر قصه ای خرد بینان را زمعنی حسه ای ویس و رامین قسمت ششم از آنگاه که رامین و گل پیمان زندگی نهادند یک ماه گذشت میهمانان و بزرگان که از هر سو برای جشن آمده بودند بازگشتند و رفتند روزی که گل خیشتن رانیک آراسته بود پیش رفت و در کنار رامین نشست رامین زمانی در چهره گل خیره شد و آنگاه او را گفت تو به راستی ویس را مانی و امروز همچون ویس زیبا شدهی گل از این سخن سخت پژمان گشت و رامین را نکوهش ها کرد که ماهی خرمی کردند هموار به چوگان و شراب و رود و اشکار به پایان شد عروس نوبهاران بهاران ستود نامداران گل و رامین آسایش گرفتند به شادی بردج گوراب رفتند دگر باره فراز آمد بتارای نگاریدان سمنبر را سراپای زارایش چنان شد ماه گوراب که از دیدار او دیده گرفتاب گل گلبوی شد چون گل شکفته چو سروی در زر و گوهر گرفته چون رامین روی یار دل ستان دید. رخش را چون شکفته گل ستان دید چون دید زلف موش بارش به عبرندر گوشوارش گوش بارش مروارید چندان چو بر سوسن چکیده قطر باران بدو گفت ای به خوبی ماه گوراب برد ماه رویت ماه را آب مرا امروز تو درمان جانی که ویسه دلستان را نیک مانی تو چون ویسی لب از نوش و بر سیم تو گویی کرده شد سیبی بدونیم گلا شفته شد از گفتار رامین بدو گفت ای بدن و بد آین چون این باشد سخن آزادگان را و یا قول زبان شهزادگان را مبادا در جهان چون ویست دیگر بد آقاز و بد انجام و بدختر نه تو هرگز خوری از خیشدن بر نه از تو برخورد یک بار دیگر وقتی رامین دریافت که گل را از سخن او اندوه بر دل نشست و از یاد ویس آشفته خاطر گشت پشیمان شد و برای خوشنودی او در دردم ای به سوی ویس نوشت که هرگز یاد او نمی‌کند و روزگارش به شادکامی سپری می‌شود. او نیز نباید دور زندگانی را در انتظار بسر برد. زیرا دیگر بازگشتی نخواهد بود و آن عشق نافرجام را جز خاموشی و فراموشی سزاوارتر دارویی نخواهد بود چو رامین دید کورا دل بیازرد نگر تا پوزش آزار چون کرد زپیش گل حریر و کلک برداشت حریرش را به آب مشک بنگاشت اکی نامه نوشتان بیوفایار، بیاری بس وفاجوی و وفادار به نامه گفت ویسا، هیچ دانی که چند آمد مرا از تو زیانی کدامین روز دیدار تو دیدم که نه صدگون درد دل کشیدم را آگه کنم اکنون ز ذکارم که چون خوب است وخوررم روزگارم بدان ویسا که تا از تو جدایم به دل بر هر مرادی پا چاویم. گل خشبوی را در دل بکشتم که با گل من همیشه در بهشتم. مرا گل زن بود تا روز جاوید چو او باشد نخواهم ماه خورشید. بخوردم با گل گلبوی سوگند به گفت فرخ و جان خردمند که باشم تازیم با گل وفاجوی به شادی کرده با او روی در روی از این پس مرو با تو، ماه با من همیدون شاه با تو ماه با من. تو این پس سال و ماه و روز مشمر. راه و روز من بسیار منگر. کراه و روز هجر من دراز است. دلم از تو نیازی بیناز است. نامه رامین. در مرد به دست شاه موبد افتاد و او آن را به ویس داد و گفت دیده ات روشن رامین همسر گزیده و ترا از یاد برده است ویس از نامه رامین سخت برا شفت. زاری ها کرد و سرانجام ندیم را با پیامی نزد رامین به گوراب فرستاد و در آن از سوز دل سخنها یاد کرد چون این نامه به پایان برد رامین به عنوان برنهاد محر زرین اماریدار خود را داد و فرمود که نامه نزد جانانش برد سود شنشه را از این آگاه کردند هم از راهش به پیش شاه بردند شنشه نامه زوبستد فرو خواند در آن گفتارها خیره فروماند سبک نامه به ویس دلستان داد ذکار رام او را مجدگان داد مرورا گفت چشمت باد روشن که رامین با گل است اکنون به گلشن چوموبت نامه رامین بدوداد درخش حسطن در جانش افتاد ز سختی جانش اندرتن بجوشید ولیکن راز از مردم بپوشید چون مینو بود خرم از برونش چو دوزخ بود تفسیده درونش به خنده می از دلش تنگی به رهواری همی پوشید لنگی بدو گفت از خدا این خواستم من که روزی گم کند بازار دشمن بدین شادید هم بسیار من چیز بسی گوهر به آتشگه برم نیز همو از غم برست اکنون و هم من از میان بازار دشمن کنون اندر جهانم هیچ غم نیست که جانم ز بیم توستم نیست من اندر کام و ناز و بخت پیروز نخوش خوردم نخوش خفتم یکی روز همی گفتین سخن دل با زبان نه سخن را آشکارا با نهان نه چو بیرون رفت شاه او را تب آمد ز تاب مر جانش بر لب آمد چکان گشته ز اندامش خوی سرد چو شبنم کو نشینت بر گل زرد سیسروش چو بید از باد لرزان دلش همچون دل من زار و سوزان اگر یک سر بشد مهرم زیادت میان مهربانان شرم بادد چو برگ لاله بودت خوب گفتار به زیر لاله در خفته سیخمار بدین زشتی که از پیشم برفتی فراموش کردی آن خوبی که گفتی همی گفت این سخنها ویس بطروی زهر چشمی روان بر هر رخی جوی دل دایه بران بطروی سوزان همی گفت ای بهار دلفروزان مرا بر آتش سوزنده منشان گلاب از دیده بر گلنار مفشان که اکنون من بگیرم راه گوراب بوم در راه چون ره بیخور و خواب کنم با رام هر چاره که دانم مگر جان تو را از غم رهانم و به راه افتاد شبگیر كمان شد مرو دایه جست زوتیر ندیمه با بسی امید به دیدار رامین و رساندن پیام ویست به گوراب رفت اما از رامین جز ناسازی و تندی ندید و اندوهگین به مرف بازگشت آنگاه ویست بس دراز به رامین نوشت و از سوز دل و سرش دیده قصه ها راند و از رامین درخواست که به دیدارش روی نهد و قلب مهنت کشیده اش را آرام بخشد و چون پاسخی نیافت ده نامه دیگر فرستاد که یکی از آنها را چونین آغاز کرده بود چه خوش روزی بود روز جدایی اگر باوی نباشد بی بیوفایی اگر چه تلخ باشد فرقت یار در او شیرین بود امید دیدار نسوزد جان من یک بار در تاب که امیدت از گهگه بر او آب بر این امید رفت از من جوانی همی گویم دریغا زندگانی نویسنده چو از نامه بپرداخت به جای آورد هر چاری که بشناخت به یک فرسنگ بوی نامه ویس همیشد همچو بوی جامه ویس پس آنگاه خواند از این را بر خیش بدو گفت ای به من شایست چون خیش تو را خواهم پرستیدن برامین مرا در خور از جان و جهان بین مکن در ره رنگ و تیز بشتاب چو باد دیمهی و تیر پرتاب چنان کن که نبیند دوست و دشمن برامین بر پیام و نامه من که من زین پس به راحت چشم دارم گهی روز و گهی ساعت چمارم درودش دهز من بیش از ستاره بگو ای بد دل زنهار خاره فراموش کردی آن سوگند و زنهار که خوردی با منو کردی دو بار یکی بفریفتی جفت کسان را به ننگ آلوده کردی دودمان را چو از من سیر گشتی وزرخانم ز گل هم سیر گردی نیک دانم چو آزین سر به سر پیغام بشنید همانگه بات پایی خنگ بگزید به پای او چه کوثار و چه گردون به چشم او چه دریا و چه هامون به راه اندر نخردش بود و نخواب به دو هفته ز مروا آمد به گوراب آنگاه که ویس دلارا نامه پرسوزش را به دست آزین به سوی رامین روان ساخت از غم جدایی انسان مویه کرد و ناله برداشت هران مردی که این نامه بخواند اگر با دل با بی دل بماند کجا شد آن خجست روزگارم که بودی آفتابندر کنارم چرا با جان من چندین ستیزی چرا بیهود خون من بریزی مرا دل دشمن است ای وای بر من چرا چار همیجویم ز دشمن چند که رامین در کنار دلدارش گل روزگار به شاد سپری می کرد. اما پیوسته دیده انتظارش به سوی ویس بود و گذشت عمر یاد او را و مهر او را از چهره جانش نمی زدود یک روز در چمنزاران عطر بنفشه بهاری یاد ویس را در دل رامین آورد بی قرار گشت. ناله برداشت و آنگاه او را از پیوندش با گل ملال و پشیمانی در دل نشست چرا امین چندگه با گل به پیوه شد از پیوند او هم سیر هم مه کمان مهربانی شد گسسته چو تیر دوستداری شد شکسته چنان رام را پیوند گراب که خوش دارد سبود تا نوبوت آب دل رامین لختی سیر گشته همان دیدار ویسه دیر گشته تو گفتی آفتاب مهربانی برون آمد ز میغ بدگمانی چو بنمود از دلش مهر و وفاچر ز یاران دور شد رامین بدمهر فرود آمد ز باره دل شکسته قرار از جان و رنگ از رخ گسسته همی گفت ای دل رنجور تا کی تو را بینم به سان مست بیمی. زمانی بر زمانه کرد نفرین که جانش را همیشه داشت غمگین گهی در شهر و جای خیش رنجور گهی از خانمان و دوستان دور گهی با دوست کردن برد باری یهی بیدوست دوست کردن زارواری به دل هردم همی کردی خطابی به سوز جان همی کردی به دو گفتی که ای حیران بی چو مجنون فارغ از بیگانه و خیش همیشه تو به مرد مست مانی که زشت از خوب و نیک از بد ندانی ز سستی بر یکی پیمان نپایی ز نادانی به هر رنگی برایی به امید تو از جانان بریدم به جای او یکی دیگر گزیدم، سزدگر انده و تیمار دیدم که شاخ شادمانی خود بریدم همی شد در پسش پنهان رفیدا نگهبان گشته بر داماد پیدا رفیدا هرچه را گفت بشنید پس آنگه پیش او رفت و بپرسید بدو گفت ای چراغ نامداران چرا داری نشان سوکواران چه ماند از کامها کیزت ندادد چرا دیواورد انده بیادد جوانی داری و رنگ شاهی از این بهتر که تو داری چه خواهی؟ جوابش داد رامین دلازار که نشناسد درست آزار بیمار تو معذوری که درد من ندانی چون من نالم مرا بیهود خانی تو را گوراب شهر و جای خیش است تو را هر کس در او فرزند و خویش است مرا ای در نه است و نه پیوند، نه یار و نه دلارام و نه فرزند. چه خوش بودن گذشته روزگاران، میان آن همه شایسته یاران. چه خوش بودن که از عشقم بلا بود، مرا از دوست گوناگون جفا بود. چه خوش بودن جفای دوست چندان فرو بردن به لب از خشم دندان چه خوش بودن شمار بوسه کردن به هر عذری دو سوگند خوردن چه خوش بودن که هر روزی دو بار از او فریاد خواندم پیش دادار چه خوش بودن نماندن بر یکیسان گهی فریاد خان، گه آفرین خان، پسانگه گشتن از کرده پشیمان، دوصد بار آفرین خاندنش بر جان گهی زلفش به دست خود شکستن، گهی از دست او زنار بستن چونین بودم که گفتم روزگاری به برد گوی کام از هر سواری کنون زارم که آن زاری نمانده است کنون خارم که آن خاری نمانده است رفیدا پدر گل که این سخن از رامین شنید و از عشق بی حد او به ویس آگاه گشت سخت در شگفت شد و گل را از این معنی با خبر ساخت چو از نخچیر باز آمد رفیدا یکا یک راز برگل کرد پیدا که رامین کی کشت و مهر بدرود همونگو گوهر که در دل داشت بنمود اگر جاوید ویرا آزمایی دلش اشق و یونیکویی نمایی همان مار است هنگام گزیدن همان گرگ است هنگام دریدن درخت تال خم تلخاورد بر اگر چه ما دهیمش آب شکر اگر رامین به کس شایسته بودی وفا با ویس بانو او نمودی مهرو مهر و راستی جستن زرامین چه اندر شور کشتن تازه نسرین چه رامین نیز باز آمد نخجیر چو نخجیری بودن در دل زده تیر گره بسته میان ابروان را به خون دیدگان شست رخان را گل گلبوی پیش او نشسته به رخ بازار بطرویان شکسته بدل دل مویه کنان با بوی جفت نهان از هر کسی با دل همیگو مرا این بزم و این ایوان خرم به دل ناخوشتر است از جای ماتم چنان آید نگارم را گمانی که من هستم کنون در شادمانی